مصنوی معنوی مولوی برنامه نوزده هم در صفت پیر و متاوعت وی ای. ایزیا الحق حسام الدین بگیر یک دو کاغذ برفضا در وصف پیر، گرچه جسم نازوکت را زور نیست، لیک، بی خورشید ما را نور نیست، گرچه مسباح و زجاجه گشته ای، لیک، سرخیل دلی، سر ای، چون سر رشته بدست و کام توست، درهای اقد دل، توست، برنوی سحوال پیر راهدان پیر را بگزین و عین راهدان پیر تابستان و خلقان تیر ما خلق مانند شبند و پیر ماه کردم بخت جوان را نام پیر کوز حق پیر است نز ایام پیر او چنان پیر است کش آغاز نیست با چنان در یتیم باز نیست خود قوی تر می شود خمر که هن خاص آن خمری که باشد من لدون پیر را بگذین که به پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر آن رهی که بارها تو رفتهی به قلاو و زندران آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مراو تنها زره بر پیچ. گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول. غولت از ره افگنت اندرگزند، از تو داهیتر در این ره بس بادند. از نوبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیس بدروان صد هزاران سال راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و اور استخوانهاشان ببین و مویشان عبرت گیر و مران خرسویشان گردن خرگیر و سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش هین محل خراب و دست از وی مدار زان که عشق اوست سوی سبززار گر یکیدم تو به غفلت واهلیش او رود فرسنگ ها سوی هشیش دشمن راه است خر مست علف ای که بس خربنده را کرد و تلف گر ندانی ره هر آنچه چه خرب خواست عکس آن کن خود بود آن را راست شاور و پسانگه خالفو و ان من لم یاس با هوا و آرزو کم باش دوست چون یزلک ان سبیل الله است این هوا را نشکند اندر جهان هی چیز همچو سایه همرهان. رسیت کردن رسول صلی الله علیه وسلم مرعلی را کرم الله و وجهه که چون هر کسی به نوع اطاعت تقرب جویت به حق تو تقربجوی به صحبت عاقل و بنده خاص تا از ایشان همه پیش تر باشی. امبار علی را کی علی شیر حقی پهلوان پردلی لیک برشیری مکن هم ای تمید را در سایه نخل امید اندر را در سایه آن عاقل که برد از راه ناقله ذل او اندر زمین چون کوه قاف روح او سیمرغ بسعالی بس تواف گر بگویم تا قیامت نعت او هیچ آن را مقتب و غایت مجو در بشر رو پوش کردست آفتاب فهم کن والله و عالم به سواب یا علی، از جمله تاعت راه، برگزین تو سایه خاص اله. هر کس در تاعت بگریختند، خیشتن را مخلص انگیختند. تو برو در سایه آقل گریز، تا رهی زندشمن پنهان ستیز، از همه تاعات اینت بهتر است سبق یابی بر هر آن سابق که هست چون گرفتت پیر هین تسلیم شو همچون موسا زیر حکم خزر رو صبر کن بر کار خضری بی تا نگوید خزر رو حازا فراق گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچی تفل را کشد تو مو مکن دست او را حق چو دست خیش خواند تا ید الله فوق ایدی هم براند دست حق می را ندش زندش کند زنده چ بود جان پایندش کند هر که تنها را این ره برید هم به آون همت پیران رسید دست پیر از غایبان کوتاه نیست دست او جز قبضه الله نیست غایبان را چونچونین خلعت دهند حاضران از غایبان لاشک بهند غایبان را چون نواله می دهند. پیش مهمان تا چه نعمتها نهند کو کسی که پیش شه بندد کمر تا کسی که هست بیرون سوی در چون گزیدی پیر نازک دل مباش سست و ریزیده چو آب و گل باش گر به هر زخم تو پرکی نشوی پس کجا به سیقل آیی نشوی کبودی زدن قزبینی بر شانگاه صورت شعر و پشایمان شدن او به سبب زخم سوزن. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزبینیان بر تن و دست و کتف ها بیگزند. از سر سوزن کبودی ها زنند سوی دلاکی بشد قذبینیه که کبودم زن بکن شیرینیه گفت چه صورت زنم؟ ای پهلوان گفت بر زن صورت شیر جیان. تاله هم شیر است نقش شیر زن. جهت کن رنگ کبود سیر زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم. گفت بر شانگه هم زن آن رقم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد. کیسنی مر مرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شعر فرمودی مرا. گفت از چه عضو کردی ابتدا. گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت. دمگاه او دمگه هم محکم گرفت. شیر بیدم باش گو ای شیر ساز که دلم سستی گرفت از زخم گاز. جانب دیگر گرفتان شخص زخم بی محابا بی مواسا بی زرم بان کردو کین چه اندام است از او، گفت این گوش است ای مرد نکو گفت تا گوشش نباشد ای حکیم گوش را بگذار و کوته کن، گلیم جانب دیگر خلش آغاز کرد باز قزبینی فغان را ساز کرد کین سوم جانب چه اندام است نیز گفت این اینست اشکم ای عزیز گفت تا اشکم نباشد شیر را چه شکم باید نگار سیر را خیره شد دلاک و پس حیران بماند تا بدیر گشت در دندان بماند بر زمین زد سوزن از خشم و استاد گفت در عالم کسی را این فتاد شیر بیدم و سر و اشکم کدید این چون این شیر خدا خود نافرید ای برادر صبر کن بر درد نیش تا از نیش نفس گبر خیش کن گروهی که رهیدند از وجود چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود هر که مردند در تن او نفس گبر مرورا فرمان برد خورشید و ابر چون دلش آموخت شمعا افروختن آفتاب را نیارد سوختن گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزا وركزا ان کهفهم خار جمله لطف چون گل می شود پیش جزوی کو سوی کل می رود چیست تعظیم خدا افراشتن خیشتن را خار و خاکی داشتن چیست توحید خدا آموختن خیشتن را پیش واحد سوختن گر همه خواهی که بفروزی چروز هستی همچون شب خود را بسوز هستیت در هست آن هستی نواز همچو مس در کیمیا و اندرگداز، در من و ما سخت کردستی تو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر شکار. شیر و گرگ و روبه بهر شکار رفته بودند از طلب در کوه تا با پشت همدگر بر سعیدها سخت بربندند بار قیدها ارصه با هم اندران صحرای ژرف سعیدها گیرند بسیار و شگرف گرچیز ایشان شیر نر را ننگ بود لیک کرد اکرام و همراهی نمود اینچنین شهررا زلشکر زحمت است، لیک همره شد، جماعت رحمت است. اینچونین مهرا ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بحر سخاست. امر شاور هم پیمبر را رسید، گرچی رای نیست رایش را ندید. در ترازو جاو رفیق زر شده است. نی از آنکه که جاو زر گوهر شده است. روح قالب را کنون همره شده است. مدت سگ هارس درگه شده است. چونکه که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با و شکوه، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. هر که باشد در پی شیر حراب، کم نیاید روز شب او را کباب. چون زکوه در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خونکشان، گرگرو بحرا تمع بود اندران که روید قسمت به عدل خسروان. عکس تمع هر دوشان بر شیر زد. شیر دانست آن تمعه را سند. هر که باشد شیر اسرار و امیر او بداند هرچی اندیشد زمیر. هین نگه دار ای دل اندیش جو دل ز اندیش بدی در پیش او داند و خر را هم خموش در رخت خندد برای روی پوش شیر چون دانست آن وسواسشان وانه گفت و داشت آندم پاسشان لیک با خود گفت بن مایم سزا مر را ای خسیسان گدا مر شما را بس نیامد رای من زنتان این است در ایتای من ای اقول و رایتان از رای من از عطاهای جهان آرای من نقش با نقاش چه دگر چون سگالش اوش بخشید و خبر، اینچونین زن خسیسانه بمن، مرشما را بود ننگان زمان زانین به الله زن را گر نبرم سر بود عین خطا، وارهانم چرخ را از ننگتان، تا بماند در جهان این داستان، شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسم های شیر ایمن مباش. مال دنیا شد تبسم های حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. فقر و رنجوری ای ایسند، کن تبسم دام خود را برکند. اگتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیشای ای گرگ بخش کن سایدها را میان ما. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن، ای گرگ کهون نایب من باش در قسمت گری تا پدید آید که تو چه گوهری گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. بز مرا که بز میانست و وسط روبه ها خرگوش بستان بی غلط شعر گفت ای گرگ چون گفتی بگو چون که من باشم تو گویی ما و تو گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید پیش چون من شعر بی مثلو ندید گفت پیشا ای خری کو خود بدید پیشش آمد زت او را درید چون ندیدش مغز و تدبیر رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. گفت، چون دید منت از خود این چون این جان را بباید زار مرد. چون نبودی فانی در پیش من، فضل آمد مرتو را گردن زدن. کل این حالکن جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا کلو شیع حاله کن نبود جزا. زان که در الاست او از لا گذشت. هر که در الاست او فانی نگشت. هر که بردر او من و ما می زند. رد باب است او بر لا می تند. قصه آن کس که در یار بکفت از درون گفت کیست؟ گفت منم گفت چون تو توی در نمی گشایم هیچ کس را از یاران نمی شناسم که او من باشد آن یکی آمد در یاره بزد گفت یارش کیستی ای معتمد گفت من گفتش برو هنگام نیست این خانه مقام خام نیست خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد کی وارهاند از نفاق رفت آن مسکین و سال در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته، پس بازگشت. باز, باز گرده خانه هم بازگشت. حلقه زد بردر، بسد ترس و ادب تا به نجهت بی ادب لفظ زلب. بانگ زد یارش که بردر کیست آن، گفت بردر هم توی ای دلستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن درا. را با سوزن آمد ارتباط، نیست در خور با جمل سم ملخیات. که شود باریک هستی جمل، جزب مقراز ریاضات و عمل. دست حق باید مر آن را ای فلان، کو بر هر محال کنفکان، هر محال از دست او ممکن شود. هر هرون از بیم او ساکن شود. اکمه و عبرس چه باشد؟ مرده نیز زنده گردد از فسون آن عزیز. وان ادم که از مرده مرده تر بود، در کف ایجاد او مستر بود کل یومن هو فی شعنن بخان مرورا به کار و به فعل مدان کمترین کارش هر روز است آن کو سلاشگر را کند این سو روان لشکر زسلاب سوی امهات آن تا در رحم روید نبات لشکر زرهام سوی خاکدان تا زنر و ماده پرگردد جهان لشکر از خاک زن سوی اجل تا ببیند هر کس حسن عمل این سخن پایان ندارد هین به تاز سوی اندویار پاک پاک باز برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند